سلام به شنوندگان خوب افسانه های سوتی با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست شاهزاده عزیز روزی روزگاری پادشاه خیلی مهربون و سخابتمندیر زندگی میکرد که همه اطرافیا اونو به اسم شاه خوب مینامیدن یه بار که به شکار رفته بود سگش میخواست یه خرگوش سفید رو بگیره که خرگوش از دست سگ فرار کرد و به پادشاه پناه برد. پادشاه اونو نوازش کرد و گفت حالا که تو به من پناه آوردی نمیذارم هیچ کسی ازیتت کنه. بعد خرگوش رو با خودش به قصرش برد و جای مناسبی رو براش تیه کرد و بهترین ها هم در اختیارش گذاشت. اون شب وقتی شاه تو اتاقش تنها بود ناگهان خانم زیبایی در برابرش ظاهر شد اون زن لباس بلندی به سفیدی بر تنش کرده بود و تاجی از گلهای رز سفید رو سرش بود شاه مهربون از دیدن زن خیلی تعجب کرد چون میدونست که همه درهای بسته است و نمیدونست که اون زن از کجا وارد شد زن به پادشاه گفت من پری حقیقت هستم. امروز من در جنگل بودم و وقتی شما به شکار اومده بودین خواستم ببینم آیا واقعا شاه خوبی هستید یا نه؟ بنابراین به شکل یک خرگوش سفید در اومدم و به شما پناه آوردم و فهمیدم که شما واقعا مرد مهربونی هستین. اگه شما به من کمک نکرده بودین میفهمیدم که مرد برجنسی هستین. حالا ام از مهربونی شما متشکرم و برای همیشه دوست شما میمونم. فقط کافیه به من بگید که چی میخواید که اون رو بهتون بدم. شاه مهربون گفت خانم شما چون یه پری هستید مطمئنم میدونید که من چهار زوایی دارم. من پسری دارم که برام خیلی عزیزه برای همین اون رو شاهزاده عزیز خطاب میکنم. اگه شما واقعا میخواید به من لطف کنید میخوام که با پسرم دوست بشید پری جواب داد با کمال میل من میتونم پسر شما رو زیباترین پولدارترین و حتی با باقدرتمندترین شاهزاده جهان کنم حالا آیا میخواد که کدوم یکی از این کارها رو انجام بدم شاه خوب گفت من هیچ کدوم از این مواردی رو که شما گفتین نمیخوام شما اون رو بهترین شاهزاده کنید از شما مچکرم اگه اون شاهزاده بدجنسی بشه دیگه چه فایدهی داره که پولدار باشه قدرتمند باشه یا زیبا باشه چون شما میدونید که اینا باعث خوشبختی نمیشه فقط در صورت خوب بودنه که میتونید راضی و خوشبخت باشیم پری جواب داد بله شما حق دارید ولی من نمیتونم شاهزاده رو یادم خوب بکنم مگه اینکه خودش به من کمک کنه اون خودش باید واقعا سعی کنه که خوب باشه من فقط میتونم به شما قول بدم که اونو راهنمایی کنم و اشتباهاشو بهش گوش زد کنم و اگه خودش برای کارهای بدش تنبیه نکرد من اونو تنبیه میکنم شاه خوب از این قول پری خیلی خوشحال شد مدت زیادی از این ماجران نگذشته بود که شاه مرد و شاهزاده عزیز از مرگ پدرش خیلی ناراحت چون, چون پدرش رو خیلی دوست داشت شاهزاده حاضر بود همه ثروت و گنجهاش رو بده و بار دیگه پدرش در کنارش باشه دو روز بعد از مرگ پدرش یه شب که شاهزاده به رخت خواب رفته بود یهو پری جلوی اون ظاهر شد و گفت من به پدرت قول دادم که دوست تو باشم و حالا اومدم تا هدیه بهت بدم. در همون موقع پری انگشتر طلا تلا به دست شاه ساده کرد. پری گفت خیلی مباده به این انگشتر باش چون از الماس هم گران بهاتره. هر بار که تو کار بدی انجام بدی این انگشتر انگشت تو رو میخراشه. اگه تو به این خراشیدگی اعتنایی نکنی و بازم به کار بدت ادامه بدی اون وقت من دشمنت میشم و دوستی منو از دست میدی پری با گفتن این حرف غیب شد و شاهزاده عزیز رو همونجوری در تعجب باقی گذاشت تا مدتی شاهزاده انقدر کارهای خوب انجام داد که انگشتر اصلا انگشتش رو نخراشید و اونقدر خوب شده بود که اطرافیان اونو شاهزاده عزیز سعادتمند مینایددن. یه روز شاهزاده به شکار رفت ولی نتونست چیزی شکار کنه. تو راه برگشت حس کرد که انگشتر به انگشتش فشار میاره، ولی چون انگشتش رو نخراشید بهش اعتناعی نکرد. وقتی که به قصر رسید به اتاقش رفت، سگ کوچیکی، به نام پیپی پی به طرفش دویی و با شادی براش بالا و پایین میپرید و شاهزاده که خسته بود با صدای بلند گفت برو پی کارت من با تو کاری ندارم سگ کوچولو که از حرفای اون چیزی نمیفهمید یه گوشه‌ی کتش رو گرفت و کشید تا شاید شاهزاده بهش نگاهی بندازه این کار سر اونقدر اونقدر شاهزاده رو عصبانی کرد که یه حوش آساده یه لگت بهش زد تو همون لحظه انگشتر انگشت شاساده رو محکم خراشید اون با دیدن این صحنه یه دفعه به یه گوشهی رفت و از کار خودش شرمنده شد و با خودش فکر کرد و گفت من مطمئنم الان پری داره به من میخنده هیچ کاری بدتر از این نیست که آدم به یه حیوان بیگناه لگت بزنه اگه من نتونم با یه سعی کوچیک رفتار خوبی داشته باشم چجوری میتونم یه مملکت را اداره کنم؟ صدایی در جواب شاهزاده عزیز گفت من تو رو مسخره نمی کنم ولی تو دو تا اشتباه انجام دادی اولین که وقتی به خواستت یعنی شکار نرسیدی عصبانی شدی فکر می کنی که همه آدما و حیوان باید طوری رفتار کنن که تو خوشحال باشی اون وقت از بس عصبانی هستی که به حیوان بیچاره و بیازاری حمله می کنی و او رو اگه تو واقعا فکر می کنی که هر کسی که آدم مهمیه باید زیر دستاش رو تحقیل کن و بزنه سخت اشتباه می کنی تو نباید به این کارا ادامه بدی. شاه بودن به این نیستش که آدم به دیگران ظلم کنه بلکه باید در همه جا عدل و انصاف داشته باشه. شاه قبول کرد که کارهای خوبی انجام نداده و قول داد که سعی کنه شاه بهتری باشه اما به قولش عمل نکرد چون تو دوران بچگی به وسیله یه پرستار تربیت شده بود و اون پرستار خیلی اونو لوس کرده بود یعنی هر وقت چیزی می‌خواست گریه میکرد و پاهاش رو محکم به زمین میکوبید. هر چیزی هم که میخواست پرستار فوری براش فراهم میکرد. پرستار بهش گفته بود که به هر حال اون یه روزی پادشاه میشه و همه وظیفه دارن که ازش اطاعت کنن و نمیتونن از دستوراش سرپیچی کنن. وقتی شاهزاده به اندازه کافی بزرگ شد فهمید که هیچ چیزی بدتر از اون نیست که آدم گستاخ و خودخواه باشه و سعی کرد که این عادت بدش رو از بین ببره و خودش رو اصلاح کنه. چون اون طبیعتم آدم بدی نبود. شاهزاده با خودش فکر کرد که اگه من با عصبانیت با دیگران کشمکش داشته باشم و دعوا کنم همیشه ناراحت میشم اگه تو دوران کودکی منو تنبیه کرده بودم، الان اینقدر خودخواه و زودرنج رنج نبودم. هر هرچند وقت یه بار انگشتش رو میخراشید. و شاهزاده گاهی کار بدش رو کنار میذاشت اما بعض هم به کارهاش خوب ادامه میداد. هر وقت که شاهزاده کاری انجام میداد که خیلی بد نبود، انگشتر فقط یه خراش کوچیک به دستش میداد ولی وقتی که کارهای خیلی بدی انجام میداد، انگشتر انگشتش رو جوری میخراشید که از انگشتش خون میومد. بالاخره زمانی رسید که شاهزاده از یاداوری های خسته شد و خواست که راحت باشه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. بنابراین تصمیم گرفت انگشتر رو در و دور بندازه تا از اون خراشا راحت بشه و همین کار رو هم کرد. بعد از مدتی اون دیگه هر کاری که دلش میخواست انجام میداد و دیگه اطرافیاش اصلا اونو دوست نداشتن. یه روز که شاهزاده مشغول قدم زدن بود، چشمش به دختر زیبایی افتاد و تو همون لحظه تصمیم گرفت که با اون ازدواج کنه. اون دختر سلیا نام داشت و همونقدر که صورتش زیبا بود، سیرتش هم زیبا بود. شاهزاده عزیز پیشنهادش رو به دختر گفت و با خودش فکر میکرد که اون حتما خیلی خوشحال میشه که ملکه قصر بشه. دختر جواب داد من چوپان و فقیر هستم و شایستگی ازدواج با شما رو ندارم. شاهزاده که اصلا از این جواب خوشش نیامده بود گفت تو از من خوشت نمیاد. سلیا جواب داد که نخیب به نظر من شما خیلی هم زیبا هستین، مال و ثروت زیادی هم داریم. اما کارهای بدی که هر روز انجام میدید باعث میشه که من از شما نامید بشم. شاهزاده از این حرف عصبانی شد و به سربازاش دستور داد که سلیا رو بگیرن و زندانیش کنن. شهستاده هر روز با به خاطر آوردن حرفای سلیا ناراحت می شد. اما اونقدر اونو دوست داشت که دلش نمی اونو تنبیه کنه. یکی از همراه های همیشگی و مورد اعتماد شاهزاده پسری بود که متاسفانه آدم خوبی نبود و همیشه حرفهای بدی به شاهزاده می زد و اون رو تو کارهای بد تشویق می کرد. وقتی که دید شاهزاده ناراحته ازش پرسید که چه اتفاقی افتاده و شاهستاده هم قضیه سلیا رو براش تعریف کرد و گفت که دلش می آدم بهتری باشه تا سلیا اونو بپسنده دوستش؟ به شاهزاده گفت که تو خیلی مهربونی که میخوای به خاطر این دختر خودت رو به زحمت بندازی. اگه من به جای تو بودم، کاری میکردم که مجبور بشه از من اطاعت کنه. یادت باشه که توی شاه هستی و خیلی خنده داره که بخوای کاری کنی که یه چوبان از تو راضی بشه. اون حتی اگه برده تو هم بشه، از زیاده. اونو در زندان نگه دارو مدتی فقط بهش آب و نون بده. اگه بازم راضی نشد باهات ازدواج کنه سر از تنش جدا کن تا برای دیگران درس عبرت بشه که برای همیشه باید کاملا از تو اطاعت کنن. اگه تو نتونی کاری کنی که یک دختر به حرفت گوش بده درباری ها دیگه هیچ اهمیتی به حرفت نمیدن. شخص عزیز گفت ولی این باعث شرمندگیه که من یه دختر بیچاره رو بکشتم بدم سلیا واقعا کاری نکرده که سزاوار مرگ باشه اون پسر جواب داد هر کسی که به حرف تو گوش نکنه سزاش همینه اگه هم فکر میکنی این کار بدیه خب یه بهانه چیزی برای کشتنش بیار تا بالاخره همه به این نتیجه برسن که باید ازت اطاعت کنن سربدجن که با شخصیت شاهزاده خوب آشنا بود مخصوصا این حرف رو میگفت چون شاهزاده همیشه میترسید که مبادا قدرتش رو از دست بده و دیگران ازش اطاعت نکنند به خاطر همه خیلی زود از فکر اولیش که میخواست شاه خوبی باشه صرف نظر کرد و تصمیم گرفت اون دختر رو طوری ترسونه که مجبور بشه باهاش ازدواج کنه یه شب اون پسر بد که این فکر بد رو در سر شاهزاده انداخته بود سه نفر از درباری رو دعوت کرد تا با شاهزاده شام بخورن اونا نوشیدنی زیادی به خورد شاهزاده دادن و اون علیه سلیا تحریک کردن و میگفتن که سلیا به عشق اون خندیده و اونقدر گفتن و گفتن که اون رو به اوج عصبانیت رسوندن تا جایی که تصمیم گرفت خودش پیش سلیا برو بگه که اگه رازی نشته باهاش ازدواج کنه اون رو به عنوان برده میفروشه. اما وقتی شاهزاده به اتاقی رفت که سلیا توش زندونی بود با تعجب دید که سلیا تو اتاق نیست. کلید اون اتاق هنوز تو چیب خودش بود. دیگه واقعا از این اتفاق عصبانیتش وحشیانهتر شده بود و هر کسی که جلو می اومد تا بهش کمک کنه دشنام میشنید. دوست بعد شاهزاده وقتی که دید اوزا به این صورتی ناجور شده، پیش مرد نجیب که قیم شاهزاده بود رفت. اون مرد تنها کسی بود که هنوز جرأت داشت از اشتباهات شاهزاده سخن بگه و اونو نسیت کنه. چون شاهزاده رو مثل پسر خودش دوست داشت. اون پیش پیشواست آمد و اون رو نصیحت کرد. ابتدا کمی آروم شد ولی بعد دوباره عصبانی شد و گفت که تنها تقصیر اون اینه که به اون دختر علاقمند شده با اینکه اون احترام خاصی برای اون مرد قائل شده بود ولی از قصر اخراجش کرد. دوست بعد شاهزاده و چند نفر دیگه بهش خبر دادن که سلیمان یعنی همون مرد نجیب زاده به سلیا کمک کرده تا فرار کنه و به سه نفر هم رشوه دادن تا شهادت بدن که سلیمان خودش چنین حرفی زده. شاهزاده اصابانی دوست بعد جنس خودش رو همراه چند تا سرباز فرستاد تا مرد رو مثل یه جنایتکار به زنجیر بکشن و نزده اون بیارن. اون این دستور رو داد بعد به اتاقش رفت که یه پری حقیقت در مقابلش ظاهر شد. پری گفت من به پدرت قول دادم که پندهای خوبی بهت بدم و اگه خودت جلوی کارهای بدت رو نگرفتی و خودت رو تنبیه نکردی من این کار رو بکنم. تو انگشتر رو دور انداختی و به کارهای زشتت ادامه دادی. حالا دیگه تو واقعا یک قول بیشا خودم هستی. که همه ازت وحشت دارم. حالا وقتش رسیده که من به قلم عمل کنم و تو رو تمبیح کنم. من اول بهت گوشت زد کردم که حیوانا رو آزار ندی. اما تو به این کارت ادامه دادی. تو از اسوانیت مثل یه شیر وحشی میشی و مثل یه گرد به جون دیگر میفتی. مثل یک مار پیر مردی رو که قیم تو بوده از خودت زده میکنی. حالا من خود تو رو به شکل یه حیوانی که گفتم در میارم. همین که حرفای پری تموم شد، شاهزاده متوجه شد چیزایی که گفته داره اتفاق میفته. اون سر یه شیر رو پیدا کرد، پاهای یک گرگ رو و بدن یه مار. تو همون لحظه خودش رو توی یه جنگل و کنار یه دریا دید. موجودای وحشتناکی مدام، از اون دریاچه بیرون اومدم و صدایی بلند میشد که می ببین کارهای بد تو تو رو کجا رسونده باور کن روح تو هزاران بار بدتر از جسم تو شاه شاهزاید عزیز صدای پری حقیقت رو شناخت و به سرعت برگشت تا اگه بتونه اون رو بگیر و بخوره اما هیچ کس رو اون اطراف ندید. و صدا دوباره گفت من به عصبانیت و تو خندم میگیره حالا تو رو تنبیه میکنم پری فکر کرد که شاید تنها کاری که بتونه برای اون انجام بده اینه که اونو از دریاچه دور کنه تا هر لحظه چهره زشتش رو تو آب نبینه و عصبانیتش بیشتر نشه بنابراین کاری کرد که شاهصاده بلند شد و به طرف جنگل براه افتاد راستاده با سرعت تو جنگل می دوید که ناگهان تو چاله امیغ داد که شکارچی ها برای گرفتن خیرس آماده کرده بودن. شکارچی ها وقتی که دیدن یه چنین حیوان عجیبی پیدا کردند، اونو زنجیر کردن و به سرزمین خودشون بردن. در راه شاهزاده به جای اینکه به کارهای بدش و عاقبت اونا فکر کنه مدام تو دلش پری رو سرزنش میکرد و همه این چیزا رو تقصیر اون وقتی اونا به شهر نزدیک شدن دیدن که جمعیت زیادی جمع شدن چهکارچیا پرسیدن چه اتفاقی افتاده مردم رواب دادن که شاهزاده ای که تنها لذتش رنج دادن این مردم بوده در اتاقش بر اثر رد و برق مرده چون رد و برق تنها دلیلی بود که میتونستن برای مرگ اون پیدا کنن چهار نفر از افراد بدی که شاهزاده رو تو کارهای بدش تشویق میکردن حالا به دنبال این بودن که سرزمین پادشاهیش رو بین خودشون تقسیم کنن اما مردم میدونستند که سبب همه کارهای بعدش شاهزاده، اون چند نفر بودن سر اونها رو بوریده بودن و تاج پادشاهی رو به سلیمان داده بودن که شاهزاده تو زندون انداخته بود. اون مرد نجیب زاده به محض اینکه تاج رو سرش گذاشتش، آرامش و صلح رو برای سرزمین بر ارتقا آورد. شاهزاده عزیز وقتی این مسائل رو شنید، از عصبانیت ناله کشید. وقتی به میدان بزرگ رسیدن، چیزهای بدتری هم دید. سلیمان رو تخت پادشاهی نشسته بود و مردمم هم دورش جمع شده بودم و برای اینکه صلح و آرامش دوباره به سرزمین اونها برگشته بود ازش تشکر میکردن. سلیمان با یه حرکت دست مردم رو ساکت کرد و گفت من تاج پادشاهی رو که شما به من دادید قبول کردم ولی اون رو برای شاهزاده عزیز نگه میدارم چون اون واقعا نمرده. پری به من اطمینان داده که هنوز امیدی هست که یه روزی اونو ببینم. درست مثل اوایل پادشاهیش که خیلی مهربون و من بود. اون پس از چند لحظه ادامه داد که حیف که چاپلوسای دربار اونو از راه راست منحرف کردن. من اونو خوب می‌شناسم و مطمئنم که قلبش صافه و می‌تونه مثل پدرش یه پادشاه خوبی باشه. بله، ما از دست کارهای بده اون ناراحتیم، ولی باید دلمونم براش بسوزه و امیدوار باشیم که روزی به میان ما برگرده. من از طرف خودم میگم که اگه روزی شاهزاده برگرده من به آرومی خواهم مرد. شاهزاده عزیز خیلی از این حرفها خوشش اومد و محبت قلبی قیم خودش رو درک کرد و برای اولین بار خودش رو برای کارهای وحشیانش سرزنش کرد. حالا دیگه عصبانیتش فروکش کرده بود و داشت به زندگی گذشتهش فکر میکرد. و قبول داشت که این تنبیه برای کارهای بعدی که انجام داده کمه. در قفس آهنی که شکارچیا براش درست کرده بودند، مثل یه بره مظلوم گریه کرد. شکارچیا اونو به یه باقه وحش بردن. تو اون وحش همه نو حیوان وحشی دیده میشد. شاهزاده تصمیم گرفته بود از همون لحظه موجود خوبی بشه و با شکارچی ها رفتار خوبی داشته باشه. اما این شکارچی ها بدی بودن و با اینکه که کاملاً کاملا ساکت بود گاه و بیگاه و بدون دلیل اونو کتک می زدم. یه روز که شکارچی خواب بودند، یه ببر زنجیر خودش رو پاره کرد و به شاهصاده حمله کرد تا اون رو بخوره. شاهزاده با دیدن این صحنه اول خوشحال شد که از این زندگی نکبت با نجات پیدا میکنه، ولی بعد تصمیم گرفت که خودش رو آزاد کنه. شاهزاده با خودش گفت من باید به زندگیم برگردم و آدم خوبی بشم. تو همون لحظه به زحمت در رو باز کرد و به طرف شکارچی‌ها دوید. اونا بیدار شده بودند و داشتن از خودشون در برابر ببر دفاع میکردند. ببر توجهش به شکارچیا بود و در یه لحظه شاهزاده خودش رو روی ببر انداخت و اونو کشت. شکارچیا از دیدن این صحنه تعجب کردند و هم خوشحال شدند. شخصیت بعد از اینکه ببر رو کشت کنار پای یکی از شکارچیان نشست. شکارچی واقعا تحت تاثیر کار این حیوان عجیب قریر قرار گرفته بود. یهو صدای گفت: هیچ وقت یک کار خوب بی جواب نمیمونه. تو همون لحظه اون حیوان عجیب ناپدید شد و سگ کوچولو و زیبایی جلوی پای شکارچی ظاهر شد. شاهزاده عزیز که از این تغییر شکل خوشحال بود برای شکارچی دوم تکون داد. شکارچی هم اونو بغل گرفت و نزد پادشاه برد و همه داستان رو براش تعریف کرد. ملک گفت که از سگ خوشش اومده و میخواد ازش نگهداری کنه. شاهزاده هم اگر میتونست فراموش کنه که روزی پادشاه اونجا بوده زندگی کردن تو اون قصر براش بد نبود. ملکه شاهزاده رو گرفت تا ازش نگهداری کنه. اما از اونجایی که خیلی چاق بود ملکه می ترسید که مبادا مریض بشه. بنابراین با پزشک که قصر مشورت کرد که چه چیزی برای خوردن بهش بده. پزشک گفت که اون حیوان هر روز باید فقط نقداری کمی بخوره و به این ترتیب شاهزاده عزیز بیچاره همه روزه رو گرست نمیمون. ولی سب دن بر نمی آبود صبح وقتی تک نون به دادن با خودش فکر کرد که دوست داره بره و اونو تو باغ بخوره بنابراین تک رو به دهنش گرفت و به کنار درختی تو باغ رفت اما وقتی که به کنار درخت مورد نظرش رسید دید که درخت سر جاش نیست و به جای اون یه خونه خیلی مجللی از طلا و سنگای قیمتی تو اونجا ساخته شده. افراد زیادی هم با لباس های مجلل به اون خونه وارد می و صدای موسیقی از اون داخل به گوش می رسید. ولی مسئله خیلی تعجب بر این بود که افرادی که از اون خونه خارج می همه رنگ پریده و لاغر بودند و لباسهاشون پاره شده بود. بعضی هم به محض اینکه از در خارج می شدن می و بعضی دیگه کمی اون طرفتن می و نهره می بعضی رو زمین می و از گرسنگی قش میکردند. کردن. اونو از افرادی که داشتن وارد خونه می شدن آجازان یه تیکه نوم میکردند. ولی اون افراد حتی نگاهی هم به گرستنها نمیانداختند. شازده عزیز سراغ دختری رفت که از شدت گرستنگی میخواست تیکهی علف گاز بزنه. با مهربونی با خودش گفت که من خیلی گرسنم ولی بازم میتونم تعمل کنم. اگه صبحانم رو به این دختر بدم زندگی اون رو نجات دادم. بعد تیکه نونش رو به دست دختر داد و دید که دختر اونو با ولع داره میخوره. شاهزاده از اینکه تونسته بود زندگی دختر رو نجات بده خیلی خوشحال بود و تصمیم گرفت که به قصر برگرده اما تو همون لحظه صدای فریاد شنید برگشت تا ببینه چه خبره دید چند نفر دارن سلیا رو به زور داخل خونه میبرن تو اون لحظه شاهزاده آرزو کرد که ای کاش میشد مثل چند روز قبل یه حیون وحشی باشه تا بره و سلیا رو از دست اونا نجات بده. ولی حالا فقط میتونه اسپیس رو پارس کنه. اون افراد هم هیچ توجهی به پارس کردن و اون نداشتن و رو بردن. اون تصمیم گرفت همون بمونه تا ببینه چه بلایی سر سلیا میاد. اون خودش رو سرزنش میکرد که رفتار خوبی با سلیا نداشته. شهزاده با خودش گفت تقصیر من بود. من به سلیا ظلم کردم اما خب دست خودم هم نبود در عوض حالا تصمیم گرفتم که خوب بشم تو همون لحظه سرصدایی شنید یه نفر پنجره رو باز کرد و سلیا جلوی پنجره اومد و غذای رو که به نظر خیلی خوشمزه میمد به بیرون پرتاب کرد شاسده یزید که تمام روز چیزی نخورده بود به طرف اون غذا دوید. ولی دختری که شهزاده نون رو بهش داده بود با وحشت فریاد زد و اون رو گرفت و گفت ای بیچاره به اون دست نزن هر غذایی که از اونجا بیرون میاد سمیه. تو همون لحظه صدایی گفت میبینی همیشه کار خوب یه نتیجه خوبم داره و ناگهان شاهزاده تبدیل به یه فاخته ازدیبای سفید شد و به یادش اومد که سفید رنگ محبوب پری حقیقته و امیدوار شد که شاید داره رضایت پری رو به دست میاره اون که خیلی نگران سلیا بود تو اطراف اون خونه پرواز کرد تا اینکه بالاخره یه پنجره باز پیدا کرد اما به هر اتاقی که میرفت اتاق خالی بود هیچ اثری از سلیا دیده نمیشد تصمیم گرفته بود که اگه لازم بشه تمام دنیا رو دنبال سلیا بگرده. اون چند روز پرواز کرد تا به صحرای بزرگی رسید. تو اون صحرا غاری بود که شاهزاده سلیا رو تو اون غار پیدا کرد. سلیا داشت با یه درویش صبحانه میخورد. شاهزاده عزیز که از پیدا کردن سلیا خیلی خوشحال شده بود روی شونه سلیا نشست و اون رو نوازش کرد. تا نشون بده که از دیدار دوبارش خوشحاله. سلیا که از رفتارهای عجیب اون فاخته زیبا تعجب کرده بود اونو بقل گرفت و فکر میکرد که فاخته زبون اون نمیفهمه. اما گفت که من از لطفتو متشکرم و همیشه دوستت خواهم داشت. درویش پیر همیشه باید روی این حرف بیستی. آیا حاضری قول بدی؟ تو همون لحظه یه دفعه شاهزاده به شکل اولش برگشت و پریاد زد منم قول میدم که همیشه اون رو دوست داشته باشم تو قول دادی که منو دوست داشته باشی بگو ببینم منظورت چی بود اگه بخوای از پری حقیقت میخوام که منو برای همیشه به شکلی فاخته نگه داره تا تو دوستم داشته باشی پری که تو لباس اون دربیش ظاهر شده بود به شکل خودش در اومد و گفت نه اون نظرش رو تغییر نمیده. سلیا از روز اولی که تو رو دیده دوستت داشته فقط نمیخواسته تا موقعی که تو شرور و بردرنس هستی این موضوع رو بهت بگه. ولی حالا که یه شهستاده درستگار رو مهربون شدی این موضوع رو بهت گفت و برای همیشه روی حرفش هست. سلیا و شهستاده عزیز خودشون رو به پای پری انداختن و از اون تشکر کرد. سلیا از اینکه که میدید شاهصاده از کارهای گذشتش پشیمون شده خیلی خوشحال بود و قول داد که همیشه در کنارش بمونه. پری گفت بچه ها بلند من شما رو به قصر میبرم. شاهصاده عزیز که حالا خوب و مهربون شده بود باید دوباره تاج پادشاهیش رو برسر بذاره. همینطور که اونا داشتن حرف میزدن خودشون رو در تالار سلیمان یافتم. سلیمان از دیدن شاهزاده خیلی خوشحال شد و با شادمانی تاج رو به شاهزاده داد و برای همیشه یکی از همراههای وفادارش شد. شاهزاده عزیز و سلیا سال‌های سال در کنار هم زندگی کردند و شاهزاده دوباره انگشترش رو به دستش کرد و بسیار مراقبه اون و راهنمایاش بود. امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید و اتا قصه بعدی منتظر ما باشید. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهرامی زفر کنیم؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی می کانال هزار رفسان همونیه دنبالش اجا که دنبالشیه که دنباله جایی که داستان های افزانه ای اصطوره ای دنیا